باز هم صبر می کنم. کمی دیگر. یک روز اما باید به تمام حرفهایم گوش بسپاری. یک خانه خانهکانی کاملا جدی. یک خانه تکانی تا تمامی آنچهرا که کههنگی پذیر است دور بریزیم دور دور، کهنه شدنی ها را ها من تسلیم این گرد باد کو ضد زندگی که اسمش را زندگی روزمره گذاشته اند زندگی روزمره همه زندگی است. ما اگر تمامی لحظه های زندگیمان را زندگی کنیم دیگر چندان جایی برای خاطر های احساسی رقتانگیز باقی نمیماند. در روزمرگی زندگی یک موسیقیدان همان آهنگ موج میزند که در تمام طول حیات انسان میتواند حضوری مواج داشته باشد. در زندگی جاری یک نقاش هم همان پرده های نقاشی شفتانگیزی پدید میآید که پیش آپیش رنگ و طرح ابدیت را بر تن خود دارند؟ گیل مرد: زندگی عاشق چرا باید از زندگی خالق چیزی کم داشته باشد؟ من کی گفتم باید چیزی کم داشته باشد اصل؟ پس یک روز خیلی زود باید بنشینی؟ بی دقدقه شیر و نان و درس و مدرسه به تمام حرفهایم گوش بسپاری با ادب خاموش حرف شنو مهربان و با روحی که آماده پذیرفتن حرف درست باشد و تغییر دادن واقعیت به سود حقیقت یک بار باید عاشق دیگری شد اما یک بار نباید زندگی کرد و زندگی را نباید یک قطعه کامل غیر قابل تقسیم به اجزاء فرض کرد یک گلدان، یک کوزه، یک کاسه، نه زندگی به اجزای بیشماری قابل تقسیم است که هر جز به تنهایی زندگی است هر واحد کوچک زندگی زندگی است و کل زندگی باز هم زندگی چه کنیم که نام جز اکل یکیست؟ چه کنیم؟ اما اگر قرار باشد که ما فقط یک بار زندگی کنیم، زندگی چیزی بسیار زشت و مبتزل خواهد شد. همانطور که اگر دوبار عاشق شویم، عشق چیزی بی اعتبار و بی معنی می شود. مگذار که عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود مگذار که حتی آب دادن گلهای باغچه به عادت آب دادن گلهای باغچه تبدیل شود عشق عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست پیوست نو کردن است که خود پیوست خواهان نو شدن است و دیگرگون شدن تازگی ذات عشق است و تراوت بافت عشق چگونه میشود تازگی و تراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند اصل گل به انداخته می آید کنار مردش می نشیند سر بر شانه مرد می نهاد و خجلت زده و آزری می گوید گوش از این آهنگ بر می داری اگر تو بخواهی البته که بر می دارم و به حرفهایم گوش میدهی، هیچ آهنگی را بیشتر از آن دوست ندارم پس فرصت بده بگویم تا تمام شود آن وقت جواب بده اگر نخواهی که جواب بدهم، آن وقت هم نخواهم داد میخواهم اما حال بشن و گیل مرد من دفتری دارم که تمام شعرگونه هایی را که برایم ای و حتی واژه ها و جمله های را در را آن نوشتم و می مینویسم شاعر بزرگی نیستی نیما، شاملو، سهراب و احمد رزا احمدی نیستی اما در کلامت شور یک آشق شمالی هست بود حال مدت هاست که در این دفتر یک واژه‌ی عاشقانه هم ننوشتم چرا که نگفته ای تا بنویسم به زبان تو آیا آن انقده لبریز از شراب کلام شاعرانی عاشقانه که میگفتی تا آخرین طلوع و آخرین قروب لبریز لبریز خواهد ماند حالی شب در آغاز خالی خالی شده است زمانی اگر شاعر بزرگی نبودی که نیستی لاغل برایم ترانه دلنشین دلنشینگی لکی دیگر مدت هاست که آنها را هم نمی خانی. نه؟ چرا؟ اگر به این پرسشم آنطور که به دلم بنشیند و آن را به درد نیاورد پاسخ بدهی پرسش دیگری هم دارم و شاید پرسشی نه گفتگویی طولانی سکوت مدت ها مدتها در این بار اندیشیدم اصل تا به اینجا رسیدم که نادلخواهترین ترین نقطه ممکن است. از شباهت بیزارم اصل، شباهت میان این آواز و آن آواز، این کلام عاشقانه و آن کلام، این نگاه آن نگاه، دیروز و امروز. از شباهت به تکرار میرسیم، از تکرار به عادت، از عادت به بیهودگی، از بیهودگی به خستگی و نفرت. چگونه پاسخی بیابم که به دلت بنشیند، حالان که خود هنوز به چنین پاسخی نرسیدم. اما عیب شاید از من نباشد، از مرغان مقلد باشد. توتیان قند پارسی ندیده شکر شکن شده، وای بران روزی که چیزی حتی عشق عادتمان شود عادت همه چیز را ویران می میکند از جمله عظمت دوست داشتن را تفکر خلاق را عاطفه جوشان را مشکل من این است این شده است که مدت هاست میبینم که از عشق بسیار بیش از آن مقدار ناچیزی که به راستی در جهان مهر زیاد برده ما مانده است سخن میگویند و بیشتر آنها میگویند که اصلا اهل ولایت عشق نیستند. عاشق کم است. سخن عاشقان فراوان. محبوبی در کار نیست اما مطربان ولگرد به آسانی از خوبترین محبوبان خیش و غیبت ایشان فریاد کشان و موی کنان سخن میگویند. اصل بانوی من، روزگاری است چه بعد؟ که دیگر کلام عاشقانه دلیل عشق نیست و آواز آشغانه خواندن دلیل عاشق بودن خلوص حالیا قصه ایست فرسوده و عشق را تنها شاید طبیبانی هرزه در دکانهایشان به شنیع ترین شکل ممکن تجربه کنند من و تو اصل زمانی به کشف عشق رسیده ایم که کودکان بی خیال بازی گوش هم سرودهای عاشقانه را یاد گرفتند که آشغانه زمزمه کنند. با چشمانی مملو و صداقت سوری عشق، آنها حتی غم عشق را هم اینن تقلید می کنند. عزیز من، غم عشق را باور نمی کنی؟ در روزگار ما کسانی را میبینیم مقموم، پریشان، زلفا شفته، خوی کرده، بیکاره، سردرگریبان، با چشمان خمار، عین عین عاشقان قدیمی قصه ها، بیان که اطر را یک بار از دور هم استشمام کرده باشند. اصل، نامه های پرشور نوشتن، از متداول ترین بازی های مبتزل عصر ما شده است چرا که عشق را محک نمی توان زد و هیچ معیاری در کار نیست عشق آنگاه که به واژه تبدیل شد و به نگاه و به آواز و به نامه و به عشق و به شعر و در بستبندی کاملاً کاملا متشابه به مشتریان تشنه شد در هر بازار غیر مسقفی هم می‌توان آن را خرید و به معشوق هدیه کرد و همین عشق را تحقیر کرده است. عزیز من، تولید انبوه راه را مدت هاست که برنامه بودن عشق بسته است. خوفناک است اصل، اما حتی به قلب هم آموختند که به تپیدن های تظاهر کند. خوفناک است اصل، همه چیز بدل، نگاه، نگاه من خجلم که به چشمانت که عاشق درمانده آنها هستم عاشقان نگاه کنم چرا که چندی پیش در کوه پسر بچه ای را دیدم که نگاهی بسیار عاشقتر از نگاه من داشت و به دختری با همان نگاه می نگریست و از عشق بی پایان خیش به او زیبا و به زمزمه سخن می گفت. چندان که دخترک سرانجام دل سوخته گفت علا رقم جمیع من زیستن با تو و تمامی مشقاتش را میپذیرم پس چرا به جای عاشقانه و پنهان کاران نگاه کردن زندگی مشترک آشغانه ای را آغاز نکنیم و پسرک چنان گریخت که گویی از جهنم مسلم میگریزد باز میگویم اصل دیگر سخن گفتن عاشقانه دلیل عشق نیست. آواز آشغانه خواندن دلیل عاشق بودن. در روزگاری که خوبترین و لطیفترین آهنگهای عاشقانه را کسانی کاملا هرفی و عاشقانه می و به تکرار هم می اما قلبهایشان توهی از هر شکلی از عشق است من واماندم که زنبورهایت را چگونه خبر کنم. راست بگویم اصل گاهی چنین مینگارم که در قلم روه عشق دیگر قلم نخواهد رفت و در خطه عاشقان دیگر خطی به یادگار نوشته نخواهد شد چرا که به همت سرسختانه سازندگان سکه های قلب جایی برای سلطه راستین قلب باقی نمانده است سکوت